بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولنحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب قوله تعالى وصينا الإنسان بوارده حسنا أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به قدم علينا حاجا في صفر سنة سبعين وثلاثمائة. قال أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري. قال حدثنا أبو الوليد. قال حدثنا شعبة. قال الوليد بن العيزار أخبرني. قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأوما بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استددته لزادني بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و الی و صحبیه اجمعین اما بعد بعد از نوشتن کتاب صحیح بخاری من بخاری رحمه الله کتاب ادب مفرد رو می نویسه شرط صحت رو در این کتاب نداشته یعنی که احادیث ضعیفی هم تو این کتاب هست ما ان فقط مرور خواهیم داشت روی احادیث صحیح این کتاب مرورمونم یک مرور تفصیلی نخواهد بود شرح طولانی نخواهد بود یک خلاصه گذری بر احادیث خواهیم داشت در حد امکان چون هدف از این کتاب مرور بر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصا اون چیزی که متعلق به آداب آدابی که باید ماها بر اون باشیم. اون آدابی که الله جل و علا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم شار کرده تا اینکه مسلمانان بر اون باشن حالا چه آدابی ما بهش مکلفیم ما بخاری احادیس را در این کتاب میاره اولین بابی که در این کتاب گذاشته و اولین مسئله ای که مطرح میکنه ادب با والدینه ادب با والدین و کتاب را شروع میکنه با فرموده الله جل و علا و وصینا الانسان بوالديه حسنا و الله مراته وسیه میکنه الله ما رو نصیحت میکنه الله ما رو امر میکنه به معنی امرم میاد به اینکه با نیکی با والدین خودمون رفتار بکنیم هم پدر هم مادر اولین حدیثی که ما بخاری رحم الله اینجا یاد میکنه حدیث ابو عمرو شیبانی هست که از علمای تابعین اشاره میکنه به خونه عبدالله بن مسعود میقال حدثنا صاحب هذه الدار اشاره میکنه به منزله ابن مسعود و اوما بيده لا دار عبدالله الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيئات سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين محبوب ترين أعمال نزع الله جل وعلا كعمليا فرمودا رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز بوقتش نماز بوقتش كفت مسفس يا رسول الله فرمودا نيكي بوالدين فدر وما قلت ثم أي سفس چ عملی قال ثم الجهاد و في سبيل الله بعد والدين جهاد در راه نصرت الدين الهی و جهاد که باید همیشه پرچمش بر افراشته باشه شما ما در این حدیث داریم اول رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین اعمال نماز را یاد میکنه سپس به روالده سپس جهاد در راه الله که جهاد معروفه منظور از این جهاد مجاهده نفس نیست در طلب علم منظور از این مجاهده جهاد با دشمنه رو در روی با دشمنه ولی چرا احادیث میاد در توضیح این حدیث چون صحابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میگیره میگه یا رسول الله من میخوام بیام جهاد همراه شما بعد رسول الله صلی الله علیه و میگه که پدر و مادر زنده هستن الا آخر که خواهد اومد پس مقصد از جهاد جهاد با شمشیره جهاد با نبرده با جنگ بر علیه دشمن آیه‌ای که اینجا آورده امام بخاری رحمه الله شأن نزولش در مورد صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي که حدیثش کامل خواهد اومد زمانی که مسلمان میشه مادرش قسم میخوره که غذا نخوره سه روز آب و غذا نمیخوره نزدیک به مرگش بوده بعد این آیات نازل میشه و صين الانسان بوالدي حسنه بعد الله میگه وان جهداك على ان تشرك بي ما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه در اصل داده میشه که با نیکی با پدر مادرش رفتار بکنه که ان گفتم شرحش و حدیثش کامل خواهد اومد و خواهیم خوند این حدیث یک مسئله را برای ما طلاب علم بازگو میکنه و با اونم حرص صحابه بر یاد گرفتن دینشون نیمدن نظر رسولا سرسان حرفه یاد بگیرن دینشون یاد بگیرن چه عملی مقرب نزد الله محبوب نزد الله بلکه محبوب ترین عمل نزد الله تنبالا حریصا بر اینکه که عملی را یاد بگیرن که انجام بدن عملی را یاد بگیرن انجام بدن نه اینکه عمل را بدونن و بعد عمل نکنن علمش رو داشته باشن ولی عمل نکنن مثل نماز تهجد همه میدونیم فضیلتش همه میدونیم دو تا سوره در قرآن در شعن تحجد قیام اللیل روسیانه سوره مدسر و مزمل هر دو تا سوره بحث قیام اللیل و تهجد توصیه به رسول الله صلی علیه وسلم و مؤمنان همه من میدونیم از فضیلتش از ثوابش کن عمل هست اندکه و اندکن مؤمنانی که پای بنده به این سنت باشند این سنت محبوب درگاه در الله جل و علی اگر میپرسند میپرسند که عمل بکنند نمیپرسند که فقط بدانند دنبال عملشان دنبال احیاشان زنده کردنشان. رد شهه مسلم در ادامه این حدیث اومده یک اگر بیشتر از این از رسول الله صلی الله علیه و آله می‌خواستم ادامه میداد رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی دیگر اعمال محبوب رو میگفت ولی که از باب اشفاق بر رسول الله صلی الله علیه و آله از باب اینکه این رسول خصه نشه به همین قد اکتفا کردم به این که رسول الله صلی الله علیه و آله ایاد کردن قال المؤلف رحمه الله حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يعل ابن عطاء عن ابيه عن عبد الله ابن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في صخة الوالد دوومين حديث أسحب حديث الصحيح كتاب أدب مفرد من بخاري فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الرب في رضى الوالد حديث أبي ليح حديث عبد الله بن مسعود وحديث الدومي حديث عبد الله بن عمر عند تناس بزركان أصحاب يرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء حافظين بزركا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة رأي ما أز حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية من عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس و عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن عاص. این انشاره عبادله از بزرگترین یاران اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از ابوهریره که احادیث رسول الله صلی الله علیه و به ما نقل نمودند اینجا حدیث دوم از احادیث عبادله صحابه رضی الله عنهم که میگات شنیدم رسول الله صلی الله علیه و salam فرمودند رضا الرب فی رضا الوالد رضایت پروردگار در رضایت والدینه رضایت پروردگار در رزایت والدینه خصوصا اینجا تاکید شده بر وزرایته پدر چرا چون الله جل و علا دستور داده واجب الوالدین احسان احسان بواد بکنی به با پدر مادرت مادرت دستوره با نه گفتیم از معانی و عصیت امره الله داره مراعن ام میکنه سرپیچی امرش چیه خشم با در همین دنبال حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن و سخط الرب فی سخط الوالد خشم الله در خشم پدره پدر اگر خشگی میشه الله بر تو خشگی میشه چون تو امرش رو اجابت نکردی الله به دستور داد از امرش سرپیچی نکنی دستورش را انجام بدهی ولی کن تو امر اللهیرا جواب نکرده. قال مؤلف رحمه الله باب بر الأم حدثنا أبو عاصم عن بهز ابن حاکيم عن أبيه عن جدّ قلت يا رسول الله من أبرو قال أمك قلت من أبرو قال أمك قلت من أبرو قال أمك قلت من, من, من أبرو قال أباك ثم الأقرب فالأقرب حديث بهز ابن حاکيم اونجا داریم در دومین باب از باب های ادب مفرد اونجا توصیه به پدر بود اونجا توصیه به مادر حسن حدیث حدیث قبل عبدالله بن عمر صحابیه می ناظر صلی الله علیه و سلم یکی یا رسول الله بکی خوبی کنم من ابرو گفت مادرت سپس گفت بکی خوبی کنم گفت مادرت گفت سپس بکی خوبی کنم گفت مادرت سپس گفت پدرت ما نزیک‌ترین و نزیک‌ترین از نزاکانت خب این حدیث توصیه رسول الله صلی الله علیه و به اولویت مادر در احسان و نیکی سه بار تکرار میکنه مادر از باب تاکید سپس میگه پدر نه اینکه پدر حق کمتری داره نه اهمیت مادر به احسان و نیکی به خاطر اینکه الله جل و علا در قرآن میگه وصینا الانسان بوالديه حملته امه یک گفتیم که به پدر مادرت خوبی کن چرا مادرت تو را در شکم خودش نه و حمل کرده وهنا علی وهن وهن مشقت سختی حملش و سختی زایمانش دو زایمانش بس اولی حملش بعد زایمانش و او فی عامین سوم شیردهیش دو سال توش شیر داد این نیازمند این نیست که تو حقش رو ادا بکنی به جا یاری حالا میاد اون صحابی که مادرش رو دوشش حمل میکنه، و بعد توواف میکنه میگه آیا حقش رو ادا کردن؟ عبد الله بن منگه حالا خواهد شاء الله بس اینجا تاکید بر مادر سه بار شده به خاطر چی بخاطر مشقتی که مادر دیده در تربیت و بزرگ کردن اون فرزندش. قال مؤلف رحمه الله و حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال اخبرنا محمد ابن جعفر ابن أبي كثير قال اخبرني زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبى أن تنكحني وخطبها غير فأحبت أن تنكحه فغلت عليها فقتلتها فهل لي من توبه قال أم حيه قال لا قال توب الى الله عز وجل وتقرب اليه ما استطعت فذهبت فسالت ابن عباس لما سألته عن حياه امه فقال إني لا اعلم عملا اقرب إلى الله عز وجل من بر الوالده عبدالله ابن عباس شخصي یاد نشه اسمی شخص یاد نشده شخص میگه من زنی را رفتن به خواستگاریش که باش ازدواج شخص دیگر رو مد خواستگاریش کرد اون شخص رو بر من ترجیح داد منم به تن برخورد کشتمش اون زنه رو کشتم غرت علیها فقتلتها فهل لي من توبه یا توبه ام دارم عبدالله بن عباس من شخص میگه هل امک حیه مادرت زنده است نه قالت الى الله عز وجل بکن کن به درگاه الهی و تقرب الیه ما استطعت که میتونی خوب انجام بده چون الله جل جلاله در قران میگه ان الحسنات یذهبن السيئات حسنات خوبی ها بدی ها را از بید میبرن محوش میکنن اینجا ابن عباس رضی الله عنه ما اون شخص را نمایی میکنه به بزرگترین عمل خوب و خیری که سبب میشه کفاره گناهان ها فرد بشه بزرگترین عمل را چی یاد میکنه عبدالله ابن عباس خوبی به مادر میگه مادر از زنده هست بعد میگه انی لا اعلم عملا اقرب الى الله عز و من بر الوالده نمیدونم عملی نزده الله تر باشه یعنی محبوب باشه به درگاه الهی مثل چی؟ نیکی به مادر مثل نیکی به مادر شعنش عظیمه بزرگه خصوصا نیکی کردن احسان و خوبی کردن یک سالی که اینجا مترح میشه آیا قاتل توبه داره؟ میتونه توبه بکنه حالا ما حدیث داریم شخصی که 99 تا را کشته بود که رسول الله یاد میکنه بعد میاد پیش راهبی بعد راهب میگه راهی برای توبت نیست و او را میکشه شیطان کامل میشه حالا بعضی اغراد میگیرن میگن که این شرم ما مو قبل ماست الله جل شأنه در قرآن فرقی بین گناه و گناه دیگه در بحث توبه نمیذاره یا عباد الّذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله هیچ گناهی نشید در درگاه الهی توبه هست بر هر کسی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله همه گناهان ناگوفت که من قاتل را نمیامورزم یا مشرک را نمیامورزم یا کافر را شرک و کف که بالاترن از قتل ابن قیم رحمه الله در کتاب مدارج السالکین این بحث رو باز میکنه بحث قتل را باز میکنه و قاتل میگه که این قتل از طرف حق الله و از طرف حق مخلوق حق خالق در مسئله قتل ان الله یغفر الذنوب جميعا الله اغفر میونه حق مخلوق میونه حق مخلوق حق مخلوق یا اینکه باید قصاص بشه اول شخصی شخصی را کشته قصاص یا اینکه صلح بشه یا اینکه صلح بشه با مالی مبلغی پرداخت بکنه که اولیای خون صاحبان اون خون اولیای اون شخص ازش مالی بخواهن و در مقابل اون مال ببخشنش و یا اینکه ببخشن اصلا کامل پول هم ازش نگیرن این حق چیه حق اون مخلوق پس اون قاتل اگر توبه بکنه و در توبش صادق باشه الله از حق خودش میبخشد چرا ما حق خالد را مخلوق جدا کردین چون رسول الله صلی الله علیه و سلام می‌فرمایان در حدیث به اصحاب اشاره می‌کنه آیا تدرون مل المفلس؟ یعنی مفلس کی کسی که چیزی نداره قال المفلس فی نما درهم ولا دين مفلس کسیه نداره ما هیچ نداره نه درهمینه رسول الله صلی الله عليه وسلم مفلس في امتی من يأتي بحسنات کالجبال یات مثل کوه وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقد شتم هذا هذا و سفر کدام هاذا کسی رام کشته، فیا خود من حسناتی و و هاذا من حسناتی، ایمی دس اس حسناتش اسخو بیاش میگری دیگری میگر، حتی لات بخا من حسناتی چی، دیک چیز اسخو بیاش نیم. فتو من سیئاتیم، فتو طرح علیه، همی کبو النار عزب دیها ی و ناشخاص، اون مقتول حقش اصفا میشه در روز قیامت، اون مقتول بدیهاش گرفته میشه در ترازیکی گذاشته میشه قاتل. اگر ها نداشته باشه که به اون به مقتول بدن، اگر ها نداشته باشه فیا خود هذا من حسناتي وهذا من حسنات. اگر خوبی داشته باشه ان الحسنات يرب نفسيات و اگر نداشته باشه فتوه من فتو ترحو عليه ثم يكذب في النار وبغونه وله جهنم میشه پس قاتل توبه داره قاتل توبه داره میتونه توبه بکنه شخصی دیگری از ابن عباس میاد چشاش قرمز عصبانی بعد بهش میگه هل قاتل توبه قاتل توبه داره میگه نه اون تابعه تعجب کردن چرا ابن عباس میگه نه؟ اینجا دید گف... اینجا بود که ابن عباس میگه توبه داره و اونجا گفت که نه گفت که دیدم چشاش قرمزه قصد قتل رو داره میخواد بکوشه که بد توبه بکنه گفتم نه توبه نداره خب انسان باید بدونه طرف مخاطبش در فتوه باید دقت بکنه قائل مؤلف رحمه الله باب بر الاب حدثنا سليمان بن حارب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد, فقال أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك حدیث مس حدیث قبلی حدیث ابو هریره رضی الله عنه ما قبل عبد عبدالله بن عمر بود الان از حدیث ابو هریره داریم که صحابی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و علیه میگه کی خوبی کنم میگه به مادرت سپس میگه مادرت سپس میگه مادرت بعد میگه ثم عاده فی الرابعه قال اباک این بار میگه پدرت منزلت پدر و مادر در اسلام و همیت دادن به اونها بحث کانون خانواده بحث خوبی و احسان اینها زیبایی اسلامه اینها زیبایی اسلامه منظر نیک اسلام چهره روشن اسلام برخلاف اون تروریستی که سر پدر و مادرشون رو زدن و اسلام رو به اون زش ساختن یکی از جسامون مسلمان شده بود از انگلیس تو مدینه گفتن پدر و مادر مسلمان شدن دعوتشون دادی گفت که دعوتشون دادم ولی متاسفانه یه چیزی جلو چشمشون تیره است گفتم تیریگی چیه گفت قتل و کشتار مسلمان‌ها به هم دیگه زشتی که هست این شهری زشتی که ما از اسلام ساختیم سبب شده که مانع از اسلام خیلی ها بشه مانع از اسلام خیلی ها بشه چون چه در وصف خوارج رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان مشرکین و ها کردن خودشون رو میکشن شخص پدر مادرش رو میکشه اشاره کردیم دیگه ابتدای باب حدیث سعد بن وقاص مادرش آیا نازل میشه با وجود که مادرت مشرکه نگذار مادرت بمیره احسان کن خوبی کن مادرش قسم خورده بود که هیچی نخوره فقط در معصیت ازش پیروی نکنم ولی خوبی بهش بگو مشركه نه این که پدر مادر مسلمان باشه انسان بعد بیاد سر گردن اونها را بزنه باطل انحرافه وقتی که جهل بیاد از انسان هر چیزی سر میزنه شما اگر اینجا در حلقه علم نشینید راحت یک کسی چه در فضای مجازی چه در حقیقی میتونه شما را گمراه بکنه با جهل اگر جاهل باشید سید میشید ولی علم نوره علم جلوة روشب ميكون شما رأس انحراف الزيغ السقوط نجات ميده خيلها منحرف شدن بخاطر الجهلشون قال المؤلف رحمه الله بابلين الكلام لوالديه حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلت بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الاشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت اي والله قال احي والدك قلت عندي امي في نسخة قال احي والدك قلت عندي امي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة مجتنبت الكبائر طيس له ابن مياس استابعين اعتراف بيكونك همراه بوده نجد ابن عامر يكا السران خبارج كمرتكب كبيره همچنین صغیره را مشرک میدونستن کسی که مرتکب گناهی میشد را مشرک میدونستن جناچه ابن حزه که فصلش میاره نمیاره كنت نجدات النجدات اصحاب من نجد ابن عمر فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبار گناهانی رو مرتکب شده فکر میکرد از کباره از اون کبائری که بخشودنی نیست چون اونها ادعا داشتن که گناهان کبیره بخشودنی نمیشه فذکرت ذلك لابن عمر این مسئله را زیاد کردم به عبدالله ابن عمر فسال اهل الذکر کنتم لا تعلمون نجات انسان در علم از اهل علم اصلا بپرسه رفت نزد داناترین اون کسانی که نزدیکتر به رسول الله صلی بودن. الله علیه و آله الله خیریت این شخص را خواسته بود که او را راهنمایی کرده بود راهنمود ساخته بود به صحابی مدعیان علم زیاد بودن نجد بن عامر بود منحرف بود خیلی هم ادعا داشت این هم تحت تاثیرش واقع شده بود ولی الله جل رحمودش ساخت که از این عالمتر عبدالله بن عمر که بی سال که تن با رسول الله صلی الله علیه و بوده و 20 سال راهی رسول الله صلی الله علیه و آله داشته، حالا 20 یا کم زیادش. نزدیک به 20 سال عبدالله بن عمر همراه رسول الله صلی الله علیه و آله بودین. این شخص داناتر، عالم‌تر به احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله به وحی الهی. یا نجید بن عامر، شخص کدارش نیست عبدالله بن عمر قابل قیاس نیست با نجده بن عامر که منحرف یا از منحرفین بود. میگه که گناهانی مرتکب شده بوده، که اون رو از کبایر میدونسم. عبدالله بن عمر رضی الله میگه: "لیست هذه من الكبار. این چیزایی که یاد کردی هیچ کدومش کبیره نیست." کبایر چی بزرگترین کبیره بزرگترین گناه شرک. همونطور که بزرگترین طاعت توحیده اخلاص در توحید یک تا پرسی توحید بزرگترین حق واجبه که بگردن ماست بزرگترین واجب, واجب توحید شناخت الله و حقوقش و بزرگترین ظلم شرک پایمال کردن حقوق الهی دوچار شرک شدن بزرگترین ظلمه ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلمی بزرگیه بزرگترین ظلم پس بزرگترین ظلم بزرگترین کبیره چیه شرک بزرگترین چون در مقابل بزرگترین طاعت واقع شده اونم توحید الله و یکتاپرستی این اهمیت توحید پس اولین شرک دومی و قتل نسمت کشتن هر نفسی حالا اینجا هر نفسی منظور نفس انسی یا جنی به اعتبار تکلیف یکی از جنیان جنی دیگر رو بکشه یا انسی انسی رو بکشه ما که جن اون نمیتونیم بکشیم فقط میتونیم انسی رو بکش بنی ادم میتونن از خودشون مثل خودشون رو بکشن پس منظور از قتل و کشتن هر نفسی هر نفس مکلفی از جن و انس بزرگترین ظلم بعد از شرک و الفرار من الزحف زحف چیه؟ زحف در از رفتن به سوی دشمن برای جنگ برای نبرد فرار فراره؟ فرار خودمون گریز از جنگ از صحنه جنگ شخصی از نبرد فرار بکنه پش بده مسلمان فرار بکنه از صحنه جنگ میبینه که داره شکست میخورن به خاطر اینکه نفس خودشون نجات بده فرار بکنه از صحنه معرکه این کبیر از کباره و قذف المحصنه قذف المحصنه. چون بیشتر اتهامات ما به زنا بر زنا واقع میشه اینجا از باب اغلب آورده رسول الله صلی الله علیه و که اینجا ابن عمر یاد میکنه که حکم مرفوع هم داره قذف در از اتهام به زنا زدن دختر پاکی را پاک دامنی را یا زنی پاک دامن را انسان تهمت بزنه به زنا کبیری است کباره و اکل ریبا و اکل و مالی الیتیم اکل ریبا ربا، خاری که الله کسانی که ربا خاری میکنن را به جنگ با خودش خاصه شما در نظر بگیرید جامعی که آلودن به ربا خونه شه به اسم رن، پولشه در بانک، به اسم سود و الى آخر چقدر از کسانی داریم در جامعه خودمون، مسلمونن به اسم ولیکن ربا خاری میکنن، به جنگ به الله اومدن به جنگ با الله آمدن چطور دیگه بارون از آسمان بیاد؟ چطور دیگه درهای رحمت به مسلمان باز بشه؟ از عقوبت ها هست که رسول هست هم یاد میکنه بر ماه ها میاد به خاطر رباخاری باران قط میشه از آسمون خاطر رباخاری و این چیز مشاهده واضحه آشکار، گناه کبیری از کبایره و اکل و مال یتیم بردن مال یتیم به ناحق حدشان که تفصیلی داره چه موقع میتونه رو بیگیره از اموالیاتیم ال آخر؟ مسئله فقیه که حجر در فتح الباری مفصلی را صحبت میکنه. و الحادم فالمسجد، و الحادم فالمسجد. الحاد انجاء معنای ظلم، عدوانه، دشمنی، ستیزه. اصل الحاد، الحاد عدول میله، انحرافه. ظلم در مسجد، عدوان و دشمنی در مسجد. مسجد الله برای طاعت و عبادت شده. مردم بیان درش دعوا را بیاندازن، کتککاری را بندازند، ظلم بکنه، زلمه. مسجد برای این ساخته نشده. شخصی گم شدهش را صدا میزنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لا رد الله علی. الله بهت برش نگاردنه. مسجد برای ندازده برای گم شده نیست. مسجد برای بهداشت و نمیدونم گزارش مراکز درمانی مسجد برای اینا نیست. امور دنیاتون جای خودشه در مسجد جای عبادته طاعت انما یعمر المساجد الله من امن بالله مسجد جای ایمان تقواس عبادت و ان المساجد لله فر تدعم مع الله یحدا مساجد برای الله برای اون چیزی که الله تشریح کرده نه برای بازی نه برای تجارت نه برای پیدا کردن گمشده نه برای بازاریابی نه برای بهداشت برای اینا نیست اینا از جمله ظلمهایی هست انحرافی هست که در غیر محلشه ظلم گذاشتن یه چیزی در غیر محلشه همون الحاده دیگه. مسجد محل چی؟ عبادت طاعت. نه محل خصومات نه محل کارکاسبی، نه محل امور دنیاوی. مسجد برای چی؟ و المساجد المساجده لله. مسجد برای الله. و يستسخر يستسخر يَسْتَسْخِرُ يَسْتَسْخِرُ به دو به معنی تسخیر چیره شدن برای یه چیزی؟ چیزی را منقاد کردن، متع کردن. و هم به معنای مسخره تمسخر از. تسخیر کردن، چیره شدن و منقاد کردن و متعی کردن یه چیز. معنای دوم از تمسخر استهزا، ریشخند زدن به شخصی. ریش خند بکنی، به ریشش بخندی. یعنی چی؟ یعنی اون رو مسخره کنی خصوصا در این دور زمانه این استلاح واقعا بجاست. کسی ریش بذاره فوراً به ریشش مسخرش مسخره‌اش می‌کنه. و اداره آیه تن یستسخرون. شانه منافقینه، کفاره. خصوصا به امر دین تمسخر کردن، هر دو تا ظلمه. چه بخوام کسی را تحقیر بکنیم؟ فعلی ورزش بخوایم بعد اجرتشو ندیم زمه از کسی کار بگیریم تسخیرش بکنیم به حقش ندیم تسخیرش بکنیم عاملی را بیایم به حقوقش ندیم کبیر از کباره و چه به معنای و مسخره و تمسخر باشه؟ کبیری از کباره به چهره شخصی به نژاد شخصی به قبیش ب خندی این, این افغان، این تاجیک این کورد این ترک این لور این عربش هر به نجادش خندیدی به شکلش به پوستش به دماغش به خلقتی که برون الله او را آراسته کرده بخندی که مردم را بخندانی با اون عیب و ایرادی از خلق الله بتراشی برای خندیدن دیگران تو دچار کبیری از کبایر شدی موازم باشی لازم نیست که اون طرف مقابل ما نراحت بشی یا نشه شاید ما داریم به شوخی میگیم شما بلوچا فلانو و بعد ردیف میکنیم به مزمت شموردن و تمسخور کردن حالا به, به لباسش، حالا به شکلش، حالا به قیافش حالا به رفتار و تعاملشون آداب و الا اینکه حالا انسان بیاد یک کار ناروایی، زشتی، عملی، اشتباه در یک قوم ببینه یعنی فلان قوم آلوده هستن به این فعل نه از که اون قب را به مزمت بشماره بحث فعله عمل قوملود قوملود الله به مزمت یاد کرده ازشون ب خاطر اون عمل زشتشون نه اینکه تمسخوری درش باشه و سهحضا باشه و بوکول الوالدين من العقوق. کسی مادرش و پدرش را بگریانه حقوق اذیت آزار سرپیچی وقه تو سرپیچی بکنی از دستور پدر مادرت پدر مادرت یه چیزی میخوان تو آنها رو آزار بدی با سرپیچید قاللی نه ابن عمر تفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة تفرق الفرق خوف ترس حراس أيها حراس صاري أز جهنم فدس صاري كبالده بهش بشي قلت إي والله بله عاري والله قسم يودميكنا قال أحيّن والدائي فدر موذرة زندهس قلت عندي أمي موذرة زنداس. قال فوالله قسم یاد میکنه عبدالله بن عمر لو اعلان تلهال كلام اگر با نرمی به مادر سختم میگی و اطعامتها الطعام و بش غذا لا تدخلن الجنة ما الكبائر تلكبائر اگر اس کبائر دوری بکنی کبائر را انجام ندی اون صغیرها پاک میشن مح میشا با اون خوبی با اون خوبی به الله در قرآن یاد میکنه انت اجتنبو کبائر ما تنهون عنا عنكم سیئاتكم انت اجتنبو کبائر ما تنهون اگر از کبائر دوری بکنید ما گناهان صغیره شما را تکفیر میکنید میبخشیم میامرزه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود نمازات الخمس نمازهای فرض پنج دونه حج رمضان تا رمزان مکفرات اذا اجتنبتل کبائر اگر از کبائر دوری بکونید فرض پنج گانمون نمازهای مون, نمازه فرز مون. صفاره گناهان ما حسن صغائر ما در صورتی که ما از گناهان کبیره دوری بکنیم قال الحديث قال المؤلف رحمه الله و حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال وخذ لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تمتنع من شيء احباه حديث عروه رضی الله عنه در فرموده الله جل وعلا الله ما جناح الذل من رحمت یعنی چی ما بالهامون را با و رحمت فرش بکنیم زیر پای مادر الله ما جناح الذل لهما پدر مادر قال لا تمتنع من شيء نحباه امتنع بس از چیزی که دوست دارن دوست دارن با فلان شخص ازدواج بکنی دوست دارن فلان کاری را انجام بدی مادامی که در معصیت الهی نباشه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق طاعت هیچ مخلوقی نباید بکنی در معصیت خالق مادامی که امرشون دستورشون پدر مادر مباحن وظیفته که اونها رو نرنجونی چیزی که دوست دارن را انجام بدی وقف ظلهما جناح الذل خفض پایین آوردن پایین دستان در لغت عربی به دست بالام گفته میشه همونطور که پرنده به بالهاش دستم گفته میشه. متقابله. وقف خف از پایین وردنه. یعنی سر خم کن جلو پدر مادرت. بالاتو به همدیگه دیگه بچسبون همونطور که پرنده وقتی که سر پایین میاره دستاشو به همدیگه میچسبونه. من ذل جناح الظل وضموم ایلیک جناحک من الرحب. چنانچه الله در قرآن از بحث دستان یاد میکنه. وضموم ایلیک جناحک من الرحب. کنایه هست از خیشتنداری کنایه هست از سبر و تحمل کنایه هست از بودن در مقابل والدین نرنجوندنشون نهایت صبر و تحمل و بردباری در مقابل کاری که از تو میخواد ابن قیم در کتاب سواعق مرسل مفصل فیرامون این آیه صحبت کردن که دیگه ما بقیش رو میذاریم به مطالعه خودتون و تحقیق خودتون در کتاب سواعق بارک الله فیکم و صلی الله علی محمد و علی محمد